سلام بر همه شما مخاطبان کانال هزار افسان جایی که قصه های کهن و افسانه های پر رمز و راز جان می گیرن امروز داستان زن زیبا و شکار چی رو براتون روایت می کنید داستان زیبا و جذاب پس تا انتهای داستان همراه ما باشید و لذت و بهره ببرید نمونه های دیگه از این روایت در نقاط مختلف ضبط شدن که گاه موضوع مار شدن دختر و از بین بردن اندک اندک پسر به صورت روایتی کامل و گاه جزئی از روایت بزرگتر نقل شده این موضوع و مشابهت هایی با اندیشه عرفانی داره که نفس بد رو چون ماری در درون انسان میدونه که در موقعیت های خاص به حرکت و جولان در میاد مولوی نیز مشابه اون رو در کتاب خود آورده ماجرای شکارچی و اجده های یخصده گرچه نصر این روایت اندکی اون رو از زبان معمول افسانهها ها دور کرده با این حال چون روایتی است از مردم بختیاری و کنون چاب نشده با اندکی ویرایش اون رو نقل می کنی در زمانهای خیلی دور در یک آبادی دو برادر با هم زندگی خوشی داشتند و برادر بزرگتر کشاورز و دامدار شایسته‌ای بود و به کشاورزی مشغول بود. برادر کوچکتر در شکار کردن مهارت داشت و هیچ پرنده چرنده و درنده‌ای از تیر او جان سالم به در نمی بود. در برگشت از شکار همیشه روی هاش یا گوزن بود یا بوز کوهی یا قوز و در دستاشم هم چند کعبی دیده می‌شد. این برای اهالی غیرقابل باور بود که شکارچی بدون سید به خونه برگرده اونقدر هم شکار میکرد که همسایه ها هم از گوشت شکارش استفاده میکردن یه روز که شکارچی با شتاب در تقریب سیدی بود ناگهان چشمش به دختری بلند آمد و زیبا با موهای تلایی و چشمای زیبایی افتاد که در کوهستان سرگردان بود شکارچی تعجب کرد که این دختر زیبا در کوهستان چرا سرگردونه؟ به خودش مسلط شد و دختر را صدا کرد و پرسید تو کیستی؟ تنها در این کوهستان چه میکنی؟ شکارچی که نیستی چون تیر و کمان هم نداری؟ مگه تو نمیدونی کوه و کمر پر از حیوانای درنده است اگه بهت حمله کنن چیکار کار میخوای بکنی؟ دختر با صدای غمگینی گفت، من تک و تنها هستم، در این دنیا کسی رو ندارم، اونقدر در کوهستان و دشت و دمن میگردم بلکه آشنا یا خیشی پیدا کنم، تا بقیه عمرم رو در پناه اون زندگی کنم، چشمای دختر پر از عشق بود. شکارچی خیلی متحصر شد و به دختر گفت ما دو تو برادریم که با هم زندگی میکنیم اگه تمایل داری میتونی بیای و در پناه ما زندگی کنی خونه ما رو خونه خودت بدون و ما رو دوست خودت بدون تو هم یکی از اعضای خونواده ما خواهی شد دختر فوری پذیرفت. انگار که منتظر همچین پیشنهادی بود با خوشحالی تمام به دنبال شکارچی را افتاد و به خونه اونها رفت. دو برادر دختر زیبا رو تحت سربرستی گرفتند و دخترم به کارهای خونه با آشپزی میپرداخت هر سه نفر زندگی گرمی رو شروع کردند. خونه روح و حال دیگه ای به خودش گرفت. برادرها از صبح کار میکردند و شب که به خونه برمیگشتن با یک مطبوع قضا خونه را پر کرده بود. همه جا تمیز شده بود و دختر زیبا در خونه میچرخید و از اونها پذیرایی میکرد. هر سه از این وضع لذت می بردند و خوشحال بودند یه روز برادر بزرگتر برادر کوچکترش یعنی شکارچی رو به گوشه خوند و گفت این دختر زیبا و کدبانوی است کسی را هم در این دنیا نداره و به ما پناه آورده بیا مردانگی کن و اون رو به ازدواج با خودت در بیار شکارچی با دختر زیبا ازدواج کرد و جشن بزرگی به راه انداختند به اهالی غذا و شیرنی دادند و صدای دهول و سرنا در این چند روز قد نمی شد شکارچی از این ازدواج خیلی راضی بود شب عروسی دختر زیبا زیباتر هم شده بود و مثل یک در گرانبه ها می درخشید شکارچی احساس میکرد خوشبختترین مرد دنیا الاخره عروسی به پایان رسید و شکارچی و دختر زیبا زندگی آرومی رو شروع کردند. چند ماهی گذشت شکارچی روز به روز ضعیف و ضعیفتر می شد و رنگش رو به زردی می رفت. برادر بزرگ که حکم پدر رو برای برادر کوچکترش داشت نگران حال برادر شد. روزی برادر بزرگتر از شکارچی پرسید چرا اینقدر ضعیف و رنجور شدی؟ چه مشکلی داری؟ چه حال و روزت چنین شده؟ شکارچی جواب داد به خاطر کار زیاده. نگران من نباش. برادر بزرگتر مشاهده کرد برادرش خوب نشد بلکه روز به روزم حالش بدتر شد. بنابراین نزد ملای آبادی رفت که مرد ریش سفید سرد و گرم چشیده ی روزگار بود تمام ماجرا رو برای اون مو به مو توضیح داد اون پیر گفت من به زن برادرت شک دارم به احتمال زیاد بیماری برادرت به این زن ارتباط داره و دستور داد وقتی زن شکارچی نان میپزه بدون اینکه بفهمه مقدار زیادی نمک در خمیرش بریزن و شب موقع خواب کلون در رو اندازند و اون رو کاملا زیر نظر بگیرند. برادر بزرگتر دستور ملا رو به شکارچی گفت. شکارچی در خمیر زنش مقدار زیادی نمک ریخت و چندین بار چنگ زد که خمیر رو به حالت اول برگردونه که زنش متوجه نشه. و بعد هم لگن خمیر رو سر جاش گذاشت و خودش به شکار رفت. غروب شکارچی از کوهستان برگشت زن سفره رنگینی پهن کرد شکارچی از خوردن غذا و نان امتناع کرد و به زن گفت خسته است و بهتر رختخوابش رو پهن کنه زن دستر شکارچی رو پهن کرد و شکارچی به رختخواب رفت و خودشو خواب زد زن زیبا شروع به خوردن غذا و نون کرد بعد از تمام شدن غذا هم صفره رو جمع کرد و به بستر رفت و در کنار همسرش خوابید شکارچی اما قفل رو طوری انداخته بود که زن نتونه اونو باز کنه ساعتی گذشت و زن شد و خواست در رو باز کنه اما نتونست مرد رو صدا کرد که در رو باز کنه و مرد جواب نداد و خودشو بخواب زد زن گفت تشنمه آب میخوام قفل رو نمیتونم باز کنم. گوی مرد اصلا از دنیا رفته بود و شکارچی اما از لای پلکاش همه حرکات زن رو زیر نظر داشت. ناگهان دید که زن بلند شد و دور خودش چرخید و بالا رفت و پایین اومد و لرزید و لرزید و... تبدیل به یک مار وحشتناک شد و از زیر در چوبی که با زمین یک وجب فاصله داشت سرید و بیرون رفت و بعد از مدتی دوباره از زیر در سرید و داخل شد مار وحشتناک پیچ و تاب خورد و گلوله شد و به این طرف و اون طرف خودش رو انداخت و به شکل همون زن زیبا در اومد و کنار شکارچی در بستر خوابی شکارچی که شاهد همه اون ماجراها و صحنه ها بود تعجب کرد و ترسید و چندشش شد لحظه شماری میکرد که صبح بشه زمان براش کند میگذاشت اما بالاخره صبح شد شکارچی حادثه اون شب رو برای برادرش تعریف کرد برادر همراه با شکارچی نزد ملای پیر رفتند. جریان شب گذشته رو به طور کامل شهر دادن ملا رو به شکارچی کرد و گفت به سرنوشت بدی دچار شدی تو در خطر بزرگی هستی اگه موضوع رو نمیفهمیدی فهمیدی به زودی به حلاکت می رسیدی به طوری که هیچ کس هم نمی فهمید بعد هم اضافه کرد در افسانه های قدیم اومده مار خطرناکی به صورت دختر جوان و زیبایی سرگردان در کوه و صحراست و در صدد پیدا کردن تعمهایه که دل او رو ستونه و به مرور اونو به حرکت برسونه قبل از اینکه تو رو به حرکت برسونه تو باید نابودش کنی بعد هم ملای پیر نقشهای ترک کرد تا شکارچی اون را انجام بده غروب شکارچی به خونه برگشت و زن برای انجام کارای خونه دور خودش میچرخید و همه جای یه خونه رو مثل دست یه گل نظافت کرده بود. جوشاندهی هم محیا کرد و به شکارچی داد. شکارچی به زن گفت مدتیه که احساس خستگی میکنم و نیاز به تفریح دارم. اگر مایل باشی جوشانده و غذا رو برداریم و به برادرم هم بگیم و سه با هم به صحرا بریم. زن پیشنهاد شکارچی رو پذیرفت شکارچی تیر و کمان و مقداری تناب برداشت و پرسه به صحرا رفتند و از اونجا خودشون رو به بالای کوهی رسوندند روی کوه یه درخت کهن و تنومند بود شکارچی با تنابی که همراه داشت تابی درست کرد و اول برادر بزرگتر در تاب نشست و شکارچی هم حل میداد فریاد شادی برآوردند. برادر بزرگتر با تناب در هوا رفت آمد می و هر دو به شدت لذت می بردند. از این بازی رو در موردش صحبت می کردن. به طوری که زن هم وسوسه شد. نوبت بعد شکارچی به تاب نشست و زن شروع به هل دادن اون کرد. شکارچی به زن گفت بیشتر و بیشتر حل بده و زن اون رو حالی میداد. زن مشغول آماده کردن و چیدن غذا و میوه روی سفره بود و گلیمی را هم برای نشستن کمی دورتر از تنا پهن کرده بودم. زن به شکارچی و برادر بزرگتر تعارف کرد که برای صرف غذا سر سفره حاضر بشان. شکارچی و برادر بزرگترش مقدار زیادی چوب درخت و خاشاک رو بین دو درخت بلود زیر تناب جمع کردند و اون رو افروختند تا آروم آروم شعله ور بشه. و اما نوبت به این رسید که زن در تاب بشینه اون اون و شکارچی اون رو حول میداد. در حالی که زن در هوا در رفته آمد بود، شکارچی با مهارت و زیرکی گره تناب رو باز کرد. در این لحظه آتش هم شعله ور شده بود و زن زیبا در آتش میان شغله ها افتاد. خواست که فرار کنه اما شغله های آتش بهش امان نداد. زن فریاد کشید و جیغ زد و امداد خواست. دو برادر اونو نگاه می کردن. ناگهان زن به یک مار مهیب و وحشتناک مبدل شد که در بین گدازه های آتش که به آسمان زبان کشیده بودند به خود می و کم کم سوخت و سوخت و از میان رفت. ممنون که تا انتهای داستان همراه ما بودید. منتظر داستانهای جذاب و هیجان انگیز بعدی ما باشید. در پناه اشق و نور الهی باشید آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های سهرامی زفر کنیم، جایی که پری و کتول ها زندگی می کانال هزار افزان همون یک دنبال جایی که داستان های افزانهی و اسطورهی سراسر دنیا به صورت صوتی و جذاب